الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه كده هو ما حتقابل مع سؤال در موضوع قضا و قدر بر تانواده داد بودم هفته گذشته برای یک مشکل پیدا شد 11 آزده بسیار زورت داشتم از این خاطر من مزرعه میخوایم که رفتم چون اصاد محترم دیگر تشریف داشت و گفت که شاید و 11 آزده بجه درس خدا دوام بده برای هم چیز پیدا شد بانم پیدا شد که دمجای که دعوت بدون برم و ضروری بود که باید میرفتم امروز بخیر با شما اما درست را که واده در باری قضا و قدر خدمتون تقدیم میکنم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم رب شرح صدری و یسر امری و حلو لقدت من لسانی یفقه قولی برادره عزیز و محترم موضوع قضا و قدر یکی از موضوعات بسیار دقیق و مهم در عقیده است. بعضی کسا در مسئله قضا و قدر به اساس متحصر شدن به فلسفه های مختلف متاثر شدن و حتی گمراه شدن این مساله قضا و قدر حتی بعضی از مذاهبی را ایجاد کردن مثل قدریه و جبریه اینا در تاریخ اسلام پیدا شدند و بسیار فلسفه گفتن بعضی کسایی که میخوان قضا و قدر را به اسلوب خود بفهمند. به اصلوب خود بفامند و رازو برادرهای مسلمان میم که برادرای عزیز قضا و قدر رو باید انسان به با مو اندازه که خدای عزیز و بر ما تشریح کرده و آیات قرآنی بر ما بیان کرده به مو اندازه بفامیم بعضی از دوستایی که با تقواه هستن و ایمان قوی دارن بر از اینا پشنات نکنیم که برادرهای محترم زیاد در موضوع قضا و قدر نپیچین. زیاد در موضوع قضا و قدر نپیچین و مسلمان حقیقی میه که آمن نا و سلم خدای ما ایمان آوردیم و تسلیم شدیم به تسلیم شدن به احکام خداوند متعال جل جلوه اینمی است که من شخصا وظیفه خود انجام میتوم ای که خدای عزو جل در ما چی میکنه چی تصمیم داره و میفرامیم که خداوند ارحم و است از اگر مادر مهربان از خداوند از میلیاردها مادر برای انسان مهربان تر است به خاطر تسلیم رضایت خداوند مطال جل جلاله میشن اما بعضی دوستان دیگه داریم که اونا در پالیزی که این موضوع را مطرح میکنن اگر برشان جواب گفتنشان از طرف های اسلام برشان اتو گفته میشه که به خدا بر شما جواب نگفتن یا دلیل ندارن یا مثلا سند ندارن و شما رو قناعت دادن نمیتونن از این خاطر ما مجبور هستیم که این موضوعات را مطرح بکنیم و دلایلش خدمت دوستان تقدیم بکنیم خب اول موضوع قضا قضا در لغت چی میگن و در اصطلاح اسلامی قضا چی میگن و قضا چند قسم است و ما چه قسم به قضا ایمان داشته باشیم قضا در لغت فیصله کردن میگن و قوا ربک یعنی فیصله نمو پروردگارت و در اصطلاح شریعت اسلامی خود قضا را به دو تقسیم میکنن دو دسته قضا تقسیم میشه که یکی قضای تکوینی یا قضای است که در عالم هستی است مربوط به عالم هستی میشه و دوم قسمش قضای تشریعی است در قوانین الهی که بالای انسان تطبیق میشه می ببینید قضای تکوینی کدام قضا را میگن؟ قضای تکوینی که درباره عالم هستی است مثلا در جهان، خلقت جنت، خلقت دوزخ خلقت انسانها، خلقت زمین، خلقت آسمانها این را قضای تکوینی میگن اینال یا قضای که مربوط به عالم هستی میشه در این قضا که است اینجا فیصله خداوند قاطع هست و در قضای تکوینی انسان نه سلاحیت داره و نه هم مسئولیت نه سلاحیت داریم از زنده ما در قضای تکوینی چیز می آیا و نه هم مسئولیت داریم خب، در دا کدام امور مربوط به قضای تکوینی خداوند میشه که ما سلاحیت هم نداریم و ما مسئولیت هم نداریم اول ازی اول ازی خلقت طبیعت یا ساختمان طبیعت است مثلا زمین چند طبقه هست آسمان چند طبقه هست جنت در کجا خلق شده جنت چی مقاماتی داره دوزخ چه قسم خلق شده دوزخ چی بخش هایی را داره اینمی ساختمان طبیعت جهان ما دیدم میتونیم و یا دیره نمیتونیم مربوط به دیدار است مثل عالم هستی که ما و شما او رو مشاهده میکنین سیاره ها کهکشان ها زمین آسمان کل ازی و چیزایی که مربوط به غیب است جنت از دوزخ از خلقت ملائکه ها این چیزایی که عالم است بنا اندر ساختمان طبیعت نه صلاحیت داریم و نه هم مسئولیت از ما پرسان نمیشه که چرا آسمان هفت طبقه بود و ما نمیتونیم زمین مثلا هفت طبقه ما او را عشق و قوه نه سلاحیت داریم و نه هم مسئولیت داریم و در دا روز قیامت از پیش ما پرسان هم نمیشه چون صلاحیت نیست مسئولیت هم نیست دومش حوادث طبیعی است که مربوط قضای تکوینی میشه حوادث طبیعی مثل چی؟ حوادث طبیعی مثلا زلزل ها، باریدن باران باریدن برف. تمام حوادثی که در طبیعت رخ میده زلزله های بسیار خطرناک زمین لرزه ها بنا اندر این قسمت حوادث طبیعی نه ما صلاحیت داریم و نه هم مسئولیت داریم این مربوط به قضای تکوینی میشه قضای عالم هستی سومش ساختمانه آناتومی انسان صحت یا خود آناتومی وجود انسان ما انسان خلق شدیم شاید سفید پوست باشم یا سیاه‌پوست باشم یا زردپوست باشم یا قد یکس بلند است قد یکس پخش است بنان این مربوط به قضای تکوینی خداوند میشد وقتی که یاکسر با چی ماهیت خلق کردن به خاطر خدای عزوجل انسان خلق کرده و از که مربوط به قضای تکوینی خداوند میشه کسی به خاطر سیا بودن خود ملامت نمیشه من نمیتونم رنگ سیای خودم خوب سفید تیز بسازم نمیتونم چشم های تنگ خودم چشمای کلان کلان بسازم بنا چیزی که خداوند مرا خلق کرده به تسلیم هستم و مولانا میگه ما بیرون را ننگریم و قال را ما بیرون را ننگریم و قال را مادرون را بنگریم و حال را ما بیرون کسی را نمیبینم ساختمان فیزیکی و آناتومی وجود اثیر نمی بینیم که چه قسم خ... ساخته شده یک انسان سیاه پوست یک انسان هبشی یک انسان اه... حتی برده یک انسان آجز خرید ای پیش خداوند مطال جل جلوه بسیار ارزش دارد حضرت بلال را دیلاتالان و یک انسان سفید پوست بسیار مقبول و بسیار زیبای و عضو دار ندبه و عضو پارلمان قرائش و بچه کاکای پیغمبر صلی اللہ،, صل اللہ علیه و سلم و هاشیمی قرائشی مکی فالوی خانی کابه خانیش ایره میگه سی نارن ابو لحب چرا؟ ما بیرون را ننگریم و قال را مادرون را بنگریم ما داخل وجود کسی رایم بنا از ساختمان فیزیکی انسان و یا آناتومی وجود انسان مربوط میشن به قضای عالم حسی خداوند به قضای تکوینی ما دو قسمت نه صلاحیت داریم و نه هم مسئولیت داریم چارمی زبان مادری پیدایش در یک قوم خاص در یک کشور در یک تایفه در یک ولایت و در یک ولسوالی یک تفل که نو در یک خانه تولد میشن مربوط قضای خداوند متعال است این خدای عزا و است که مره فلانی قریه در فلانی ولایت مادرم فلانی پدرم فلانی در فلانی جوی پیدا کردن بنا ان در اختیار زبان خود زبان مادری است در اختیار قوم قوم پدری است در مولایت بول سالی خود اشماریزه نرده بودم پس کار همه کارها را ایت تسته را کرد ذات خدای از جل کرد چون مسلاحیت در پیدایش خود نداشتم اگر از من مشوره خواسته شد حکم خداوند میبود تو برو از استاد مشوره بخوای من افتیم حالا پالوی بایت الله شریف در اکانی خوب لکس پیدا کن که ندکت تیاره بیاییم سکت نوازه بخوانم بلند منزل بسیار لاکس جنجا لامنه، غمامنه، جنگامنه آرامی و هر نماز مثلا چقدر عجوش زیادتر است تو را میخوادم هر وقت کلکی نمواز میکنم با اطلاعی شریفه میدیدم دیگه ما اجمل دین و دنیا ادشتامه یک شاعر مگه چقدر زیباست که هم انسان دیندار باشه هم دنیا دار باشه ما اجمل دین و دنیا ادشتامه هم دیندار باشه متدین باشه است لیکن از میلیون خود میلیون ها در راه دعوت اسلامی در راه خدا در راه جهات فی سبیل الله در راهی که مثلا اسلام است، در نشر قرآن از امشان در مجالس تفسیر و درس قرآن اشتراش میکنند. و اقبح الکفر و الافلاس به الرجل چقدر بد است که آدم اوندوان باشه پکاورا فروش غریبان باشه و متکبر شکنبر بفروشه و در نماز کاتلگات بذاریش نرگوala ما پدش دم چی میکنیم؟ یک جای مادی میگن ما فر روزم میخور نانوی نانای قا کو رو جمع کرد و رو باز میخورد روزه خده. خدا میخواد خدا زدیش این حاله بنا اگر یک کسی که یک کس مخالفت میکنن که تو زبانت نشان استایر باید بشنوند کسایی که نشان استان هستند قوم پرست هستند احزاب قومی جور میکنن ن زبان ما خوب است با زبانتوم خو خیلی خداوند در حق ما ظلم کرده پس تو به خداستی کسی به خاطر زبان مبارزه میکنه قوم منزوت به قوم تو بهتر است چرا قوم تو نسبت به قوم با بهتر است خدا میگه ان اکرمکم عند الله یاتقاكم بهترینین شما پیش خداوند با تقوایتان است و تو میگی ان اکرمکم عند الله فارسیوانکم و پشتونکم و هزارهاتون و ازبکون تو خواهیت قرآن قران را پستیری میکنی این حیاهت قران تو خونده گفته این اکرمکم عند الله اکرمتان به نزد خدا اد بنزد لینن کمونیست بنزد هتلر نشناست پس تو جوسی بنده های خدا نشدی وقتی که تو قوم پرستی و زبان پرستی میگونی تو بفهمم که شاگرد هتلر اطلار هستی اطلر میگفت که آلمانی چشم سوز صفحه پز آریایی باید حکومت کنه و یهودا یه حوا میگفتن که قوم ما ما قوم خداستیم کاوم خداستیم قوم خدای چی استی؟ <تصحنت> تو یک یک بنده آجیز بیچاره هستی از این خاطر تعصب اونا رو گمراهه کرد این خاطر یک مسلمان میفهمه که اختیار زبان اختیار قوم در که پیدا شده این پدر مادره که اختیار کرده اختیار خداوندیست من عزیز سوال میشم که چرا پدرت فلانی بود؟ من را پرستان نمیکنه عزت ابراهیم علیه سلام را پرستان میکنه که چرا تو پیغمبر بودی پدرت آتش پرست بود پرست بود بود میسا خداوند پیغمبره در خانه کی پیدا کرد؟ در خانه یک بود پرست پیدا کرد بناهن کسره رو در روز قیامت ترسان nami کنه که پدرت کیست اگه عملت چیست اناله اختیار قوم و زبان و طایفه و نجات این بدست خدای متعال است مربوط به قضای تکوینی میشم دیگه اختیار کتاب های آسمانی برادر عزیز خداوند متعال کتاب های خدا چی کرده به زبان های مختلفی که خود خدای عزوجل خواست این کتاب ها را نازل کرده قبلا تورات و انجیل و زبور به زبانهای دیگه بودن اختیار شد قرآن از شان و زبان عربی باشن اختیار خدای از زوجل است و برای ما چی مسئولیت داریم که برای هر کس باز به زبان قومش پیغمبر فرستار برای هر کس این اگر سلسلی پیغم برای ختم شد بناه خدای خدای عزواجل برای هر قوم علما و الانبیه است ما علما چپراسی خداوند استیم نوکرای خداوند استیم نوکرای کتاب خداوند استیم غلام و برده و چپراسی خداوند استیم بناه اگر شما سایتیم www.sultan.com باز کنین ببینین که علماء اسلام قرآن عظیم و شانه به تمام زبانهای دنیا ترجمه کردن میخوایی ترجمه آلندی هست انگلیسی فرانسوی به هر زبان که خواستمش بنان علماء قرآن عظیم و شانه و زبانهای مختلف ترجمه و تفسیر کردن و در های مختلف در سایت سلطان.org از بو کام نیست .org از org اگه از باز کنه ترجمه قرآن شریف در اونجا هست ایناله علمه وارثای های پیغمبر هستن قرآن عربی را و زبان بسیار خوب زبان مادری تو پیدا کردن امیال ما چقدر قرآن عظیمشان با تفسیر و ترجمهش و زبانهای مادری خود داریم مادری داریم به پشتو داریم، به انگلیسی داریم، به فرانسوی داریم به هر زبان که خواسته باشین، ما شما داریم چرا؟ علما خداوند متعال جل و جل که ما هر رسولی را چی کردیم؟ به زبان قومش فرستادیم بناهن هر پیغمبر به زبان قومش بود اختیار زبان کتاب اختیار است. ضرورت انسان ها به زبان قومش وقتی که پیغمبر ها سلسلش ختم شد با آمدن پیغمبر سلام که را را جانشین از این ها کردن براین 24 سال در خدمت همه گی مثلا ما شما حمل در شهر کابل کورس دو ماهی تفسیر شریف که مولای سبابه جور کرده، یه از چی دلالت میکنن و زبان فارسی واضع برای کلگی در شهر کابل درس میده. بنا ان اختیار کتاب الهی اختیار زبان کتاب الهی ای به دلمانه است فیصله خداوندی است مربوط به قضای تکوینی خداوند میشه نه سلاحیت داریم و نه مسئولیت داریم اختیار پیامبرا خود خداوند متعال جل جلو پیغمبر اختیار میکرد ما که مؤمن هستیم پیغمبر در هر جایی که بود از هر قومی که بود آمن الرسول و به ما من الهیم و والمؤمنون و المؤمنون كل و تمامی مؤمنان و المؤمنون كل آمن بالله و ملاکه و کتبیه و رسوله ما مؤمنان با تمام پیغمبران با تمام لا نفرخ و بین آدم می روسله ما بین پیغمبران این, این تفرقی نمی‌ریم هر پیغمبری که نامش میگیریم برش می‌کی علیه الصلاة والسلام هر پیغمبری که باشه آدم علیه السلام عیسی علیه السلام محمد علیه السلام چون اختیار, اختیار خداوند است در هر قومی که اختیار کرده اختیار خداوند است و ما تسلیم قضای خداوند مطال جلو جلو هستیم امچنان زبان کتاب های آسمانی و وضع اختیار ملائکه ها و وضعیف ملائکه هاست هر ملائکه که خداوند هر وظیفه داده مربوط به قضای الهی میشه ما ندبو صلاحیت داریم و نه هم مسئولیت داریم ای بخشا برادرهای محترم ای بخشا چی بود؟ قضای تکوینی یا فیصله خداوند در عالم هستی در چی؟ در عالم هستی چی حکم داره؟ گفتیم حکم شیه است که انسان نه صلاحیت نه مسئولیت ما صلاحیت هم نداریم و مسئولیت هم نداریم در روز قیامت در این باره از ما هیچ پرسان نمیشه. خب قسم دوم قضای تشریعی هست تشریع یعنی قانون سازی و قانون گذاری شریعت قانون هم میگن بنا قضای تشریعی قضای تشریعی عبارت از این فیصله خداوند متعال جل که خداوند فیصله کرده که شما این کار بکنین لیکن اختیارشه برای انسان داده چی رو برای انسان داده؟ برای انسان اختیار داده خداوند متعال جل جلوه گفته مثلا مثلا گفته که شما بغیر از خداوند کسی دگیره عبادت نکنین پس که عبادت میکنین ذات الله جل جلوه رو عبادت میکنید. ولی اختیار برای انسان داده که انسان عبادت میکنه و یا عبادت نمیکنه کنه خداوند گفته که اقیم الصلاه فیصله کرده نماز بخارین ولی بر انسان اختیار داده که نماز می و یا هم نماز نمی خانه قضای خداوند مثل قانونگذاری دیگه است والله المثل اعلا ما بخاطر ازی که ماناش درستار بفامیم تشریح میکنیم مثلا در پوانتون اعضای علمی میشنن فیصله میکنن قانون رو جور میکنن که اگر یک محسل آنم نمره برد کامیاب است از پینجا پایین برد ناکام است بناهن اینجا محسل درس خودم میخانه اختیارش برای خود محصل است صد با آفرین میبره دلش صفر میبره دلش اما کسی که قانونه میسازه باز او خوش نداره که کس ناکام شد یا مثلا من, من حیثی اگستاد خوش ندارم که یک شاگرد من ناکام شد و چانس دو و یا سال باز تکرار بکنن اما قانون گذاشته شده فیصله شده که او برده اینی کاره بکنین خداوند متعال جل جل و فیصله کرده که شما نماز بخانین شما عبادت بکنین شما طاعت بکنین به این خاطر شما چید بشین خب امور که مربوط به قضای تشریعی میشه کدام امور است ایمان به خدای عزا وجل است خداوند گفته که شما ایمان داشته باشین به خداوند به وحدانیت خداوند به کتابه های خداوند یا ایمان داشته باشین بناه ان مسئله ایمان فیصله خداوند است لکن اختیار ایمان داشتن بر کی داده شده؟ بر خود انسان کس که میخواهی که ایمان باشه اما شاکرن و اما کفورا ما را را نشان دادیم دل کس شکر گذاری میکنه به خداون سجده میکنن و ایما کفورا و کسی کفران نعمت میکنن و ایمان نمیرم. موضوعاتی که گفتیم به چیز میشد دومش انجام دادن اعمال صالحه خداوند متعال برای ما و شما حمر کردن فایصلا کرد که انسان باید پنج وقت نماز بخونه روزه بگیره اعمال نیک بکنه و پیغمبر سمیه که ال ایمان بدون وسع و شوبتن ایمان هفتاد و چند بخش داره برای شما با كل بخش بخشای ایمان باید هر بخش ازیره مراعات بکنین و مثل که مثلا از پیش شما احسای که اگر, اگر در یک که هفته گذشت کدام احکام خداوند سر رو کردی؟ بسیاری کسا سرش پایین میشن و میگن که من جواب, جواب ندارم. خب فکر کنین کمی سوال در روز قیامت از انسان شده که از 75 شوب ایمان، ده چند تاش عمل کردی؟ بعد بایدم از دمی 70 چند ایمان 50 50 نمره بگیره که چانس نخوره. یگونی که از یک مضمون میگیره. ده دیگه هفتاد مضمون بالا مثلا تا بس وقت شیشتون ذکر کرده خب کار کردی ده ذکر چند بردی؟ صد؟ آفرین نماز جماعت چند بردی؟ آنه سبی ملاسه نانش پاک میخره و ناپاک میخره و علال میخوره و عرام می پشت دی نماز منه نمیشم شیطان مثل عبوارس وقتی که دن دمجور کنی او کمی سوراخه که پیدا کت فورا را بر خود پیدا میکنن در دا داخلی اگر داخل میشه. اینا حرف برنامه نماز جماعت نمیگه که نخوان میگه ولهم استاد گوش گوش کتاسی استاد شدن خوشت خب چون نماز دیگه جماعت تو که نماز نخوان عثری که دیگه اگر مسلمان باشی مست میگی استاد هست ربنا ایمان. ببخش و کسانی که پیش از ما به ایمان تر شده طالب پیغمبر سلام اصحاب پیغمبر سلام مسلمانان مهاجرین انصار تابعین تا به تابعین روز روز تا دیروز و پریروز تا پیش از این با پیداشتم مولانا تجالف در قلوبنا غلل الی اما من خدا برکتسای که مؤمن هستن در دل من کدام کینه پیدونه کن خلاص وقتی که این دواره خان ما کتشک کینه نذارم ای نه وقتی که آیات قرآنو می‌خونی با جماعت میری دل هر کس خاصم است اما بعضی کسا به این شکل شیطان رو گمراه میکنه نه و به خاطر قلب خوب پاک خفاکنی تو سبط مرتبه هزار مرتبه ذکر کردی جماعت چی میکنین اما خبر نداره که وقتی که در جماعت خوفتن و صبح کس تنبلی کرد در لیست منافقین نوشت است پیغمبرش سلام فرسان کرد فرسان کرد نماز سب. فلانی کجاست گفتن نیست فلانی کجاست گفتن نیست پیغمبر سلام گفت که نماز خوفتن و صبح سر منافقا سختی میکنه یعنی کسایی که نمره رسم حسابشون غیر مستقیف همین کیا کی هستن منافق هستند عبدالله نباید ابراهیم صلی الله و سلمی سعی داشته باشه نه نه چپار نه که من نماز بخوان باز نماز خوفتان که نیت کنی قرار تلصی سعی میکنند. عبدالله نباید ابراهیم وقت نمیتونستیم تو نما وقتی کسی درست و یا صبح که ببینی بی سعی چون تا دوازده و یهشاست سعی صبحی کنی با خدا اما صبح چرا تمام وقتی که تا دو بچه شب بیشید نماز صبح رفت کرد، اش خواندن هم نمی‌چینیم از خاطر شیطان به اون طریق یک نفر رو میکنم میکنه آیی بود موضوع انشاءالله فامیده شد نه موضوع قضا گفتیم دو قسم است یکی قضا مربوط به با عالم هستی است حکم خداوند هست، فیصله خداوند است انسان صلاحیت هم نداره، مسئولیت هم نداره. قضا مربوط به قانون، خداوند قانون گذاشت فیصله کرده که ایمان، اعمال صالحه و دعوت و العصر این الانسان الافی خسر، خداوند قسم خورد. انسان در نخسان است. چطور ما در نخسان استم؟ میگه و خاطر زیستی که امروز رادیو دوکان، مکتب، خانه، بچی کالا کا ختم شد طراکی شابش میگه فلانی فلانی آخرین جای. کجا می هر قدمی را که می مانی کم سر کام شدامیرا پیش میری. کجا میری؟ آخرین خانه کجاست؟ قبر است. والا عصری خداوند با وقت قسم می خورن. ای وقت سر دار نظر داشته باشین. انسان به طرف زیان در حرکت است. به طرف نخسان در حرکت است. یعنی آخرین جایی که من دارم بازگشت نمی میری دیگه. در وضعه یک بسته است. إِلَّا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وَتَوَاسَ بالحق وَتَوَاسَ بِالْحَقِ وَتَوَاسَ میگن این شرط ایسی اساسی است که ایمان، اعمال صالحه و دعوت. خب، این میشه مربوط به قضای تکوینی. آنه میمسنه قدر. قدر چی رو میگن؟ قدر در لغت که میگیم وَالْقَدْرِ میگن. و القدر اندازه کردن ایناله در اصطلاح شریعت اسلامی قدر چی را میگن خلق اشیا غرائز و حاجات ازوی و ایتای خواست ازی اعضای بدن انسان و دادن اختیار برای انسان قدر چی را میگن خلق اعضا خداوند دست خلق کرد و بر دست چی داد؟ صلاحیت داد. صلاحیت چی؟ مثبت و منفی. چشم خلق کرد. برای چشم چی کرد؟ صلاحیتو مثبت و منفی داد. بناأن خلق اعضای انسان، خلق حاجات عضو انسان، خلق اشیاء و دادن خواص بر ازنا ولی در قدر وقتی که پرسام شد از امام اعظم صاحب ابو حنیفه گفت که یا امام والقدر خیره و شره من الله تعالی به یک عالم دیگه تشریح کرده والقدر خیره من و, من بس خیر من و من الله تعالی باشه از که خیر به در امیر من حیفاو یک نفر میبینی 50 سال شده داوال امی امانت میقرا که والقدر خیر و شر از الله اندازه خیر و شر از جانب خداوند است باز برایش سوال پیدا میشه خب وقتی که خیر و شر از جانب خداوند است پس من چی لامت هستم چون نفهمیدم چه قسم بفهمم فهمیدن از این بسیار ساده است مثلا امان الله صاحب یک شرکت جور کرد در شرکت زی وسیل مختلف سامان آشپزخانه جور میکنه شرکت سامان یا وسایل آشپزخانه در بین از سامان آشپزخانه یک دانه کارد بسیار خوب جور کرده این کارد که جور کرده شرکت امرالله صاحب چی کرده برای از این کار چی صلاحیت داده کارد جور کرد و این کارت صلاحیت استفاده مثبت هم داره و استفاده منفیره هم دارن میشه با این کار در آشپزخانه، پیاز قطع شود کشالو قطع شود در زب حیوانات استفاده شود در کارهای مثبت استفاده شود و امچنا این کار میشه که یک کسی بگیری و در شکم یک کس بزنه در گردن یک کس بزنه بناهن یک کس دیگه این خالد جان ماهی میگه این کار دار و گرفت و بورت از این منفی استفاده کرد ایناده این سوال میشه اگر یک نفر قاتل آمد کارده از شرکت از اینا خریداری کرد و بور رفت توسطه از کارد قتل را انجام داد وقتی که در محکمه آورده به استاد تو قاضی هستی استاد اون نفر میگه میگه مچی چی ملامت هستم ما چی ملامت هستم خب کار دیگه جور نمیکرد این باز کارده که جور کرده بود چرا؟ دو اون خاصیت عزیزه بود که باید انسان هم بکشن این دلیل عزی قبول میشن؟ دلیلش قبول نمیشن؟ اینال چرا؟ خاطر عزی که خلق کرده ساختن کار و در کارت خواست مصلت و منفی و خیر و شرح انداختن کاری کی بود؟ کار امان الله سای بود کار دا میگم کار دا میگم بنا انکار ده امان الله ساخت و ده او خاصیت مثبت منفی ده او که امان الله ولی او قاتل کسی استفاده کرد اختیار استفاده باید سازو بود یا نبود اینال این گبده و القدری خیریه و شریه من الله تعالی تدبیب کریم ولله الله المثال خداوند خداوان دست داد بنا این دسته که خداوان درمه داده ده, ده, ده صلاحیت استفاده مثبت و منفی استعمال خیر و شر اردوش داده؟ دارده خداوند مطال جلو جلو اما اختیار استفاده از به کی طلب داره اینال اگه دست من دا جیب تو بارم ها چی این دست من که اینجا نمیشه دگر تو خود اینجا اختیار داشتی اینجا اختیار است. اینال والقدر خیری و اندازه خیر و شر بده است من الله تعالی اما اختیارش به کی است به خود انسان. حتی در اعضای وجود انسان شما متوجه شبین ما در سایست میخوانیم که ما اعضای ارادی داریم با اعضای خیر ارادی داریم بناه اندر اعضای غیر ارادی ما باز مسئولیت ما نداریم در اعضای خیر ارادی باز مسئولیت نداریم در اعضای ارادی خود هم در مقابل قانون زندگی مسئله داریم هم در مقابل قانون خدای عزیز و جل. اما در اعضای غیر ارادی مثلا قلب ما شعب و صبح چند مرتبه زربان داشته میدی ما چه قدر حزم چقدر کرده خون در رگهای ما چقدر در حرکت بوده در شراعیم چون ای بس اللهیت ما نیسته از رحمت خداون بعضی از اعضای وجود انسان با صلاحیت انسان نیست. حالا اگر اگر نفس کشیدن بعد از خداوی مجبور آدم یک که میفهمم تو فهمیدم مگر نمیشه؟ یه موقع خساک کردم میریم خدا نفس سر به خود و یا مثلا قلب ما بعد بده اسممون مجبور خدا ما دست خدا شوراک دادم میرفته میرفته میرفتیم و یگان وقتی خواب میگه مجبور عکس تر میگیرفتیم و دیگه برای ما دست ما شور میداد داد تا که ما قلب ما کار اگر تو قلب ما میشیش <سؤال> رحمت خداوند متعال جل جلاله قلب ما را بدون اراده ما خلق کرده ما قرار قرفش خواب میکنیم مطالعه می کار میکنیم کنیم خبر نداریم خود قلب وظایف خود انجام میده بنابراین این نمیخوسته که ما اعضای غیر ارادی وجود خود مسئولیت نداریم در اعضای ارادی و القدر خیری و شریه من الله تعالی متفهم می بشم یا نمیشه یک عمر که در سایه داره مشکل من سوال زیاد میگیرم تا که درست بزینم چیز شامم اناله و القدر خیری و شرهی من الله تعالی پس اندازه خیر و شرح از جاربی کی هست؟ خدای عزبه اما اختیار استعمال از این بدسته کی انسان. چشم انسان اختیار داره حالا یک نفر مثلا چشم خود قرآن مطالعه میکنه اختیار خودش هست درس میخونه اختیار خودش است به کمپیوتر کارای مثبت میکنه خودش هست به اختیار خودش هست اما اگر چشم خود منفی استعمال میکنه از فیلم‌های مبتذل چشم خود را به دیدن فیلم‌های مبتذل مصرف سازن گوش انسان است غبه مثبت، تلاوت قرآن علم دانش همه چیز ولی یک نفر از گوش خود استفاده منفی میکنه پس اختیارش به خودش است نیست بناً تمام اعضای وجود ما که هست چشم است دست است حواس پنج‌گانه است کل از این ای, ای از میگن که والقدر خیره و شره من الله تعالی اندازه خیر و شرش از جانبی کی است ذات الله جل, جل. اما اختیار استعمالش بدسته کی هست؟ بدست خود انسان اگر اختیارش بدست انسان نبود مسئولیت هام نیست، صلاحیت نیست قلب من چه خیلی زربان زادم؟ اختیار ندارم چون اختیار ندارم مسئولیتم ندارم خدا از پیش ما پسلا نمیکنه آیا ما ملائکه کرامان کاتبی نوشته میکنه که شوق فلان اینقدر قلب تو ذره بر که در روز قیامت پرسانند چرا قلب تو اینشو 500 مرتبه ها 1000 مرتبه فهمو سم صلاحیت ندوت اما در دست انسان در چشم انسان در فکر انسان در اندیشه انسان در کپسدان انسان احساسه انسان دی که انسان تصرف داره بنا این مسئولیتم داره واضح شد ان شاء این خداوند متعال جلاله ما مامیم که خداوند ذات ارحم و است. این حال ذات رحمان و رحیم به خاطر ازی که ما اعضای وجود خدا درست استعمال کنیم باز برای ما اینا حدینا هستبیل. باز خداوند انسان امتو به تفاوت نمانده بلکه برای انسان راه را نشان داده. در انسان وسائل که او بتانه به حق برسه و نجات پیدا بکنه یعنی استاد یا استاد است مثلا در سن وقتی که استاد مهربان است میگه که شاگرد کامیاب شود بازبر کامیاب شدن از راههای کامیابی رو پیدا میکنن برش میاد که بچه‌م اینی درست اینی چپترت اینی نوتت اینی کارخانگیت اینی فلانی کارخانگی دقیقه‌نمرا دقیقه‌نمرا دقیقه‌نمرا دقیق این معصلمی تا که کلی نمرات خداجام کنه بالاخره صد آفرین اگر استاد سالم است چپتر یکم شو چپتر نازورم درست بتی؟ چشمای خدافت میگیره گفتم گفته میره میره میره میره میره, میره خدا نه بگی بلغاریایی گف زد فرانسویی گف زد گفتم گفته رفت دیگه مثلا چیزی که خودش یاد داره بررز گفته میره سرمای ساده میگه وقتی دست خالا کتاب بسته میکنه برو بخیی اینال خداوند متعال ارحم الراحمین یاری خداوند مهربان ترین مهربانان است پس خدای عزواجل از رحمت خود به خاطر این که برای ما وسایل هم داد این خاصیت خیر و شر داره. برای خداوند متعال جل لجاله چی کرد؟ خداوند متعال برای انسان نعمت عقل داد از عقل خود استفاده کنند افلا تحقیلو؟ چرا عقل زیده کار نمی پرتی؟ افلا تدبرون القرآن؟ چرا در باری قرآن تدبر نمیگن، تفکر نمی کن؟ نعمت ایمان داد خداوند متعال جان ل مرامت نمان که پراگنده نفهمیم بلکه ایمان برای ما واضح کرد و عقیده اسلام بسیار واضح هست بسیار واضح و سهل و آسان برای یک جوالی هم که بگویی بگویی جوالی جان خدا یکی است. خانه تابو. بدر نداره فرزند نداره شریک نداره ما انسان هستیم فرزند و پسر و گپا داریم خدای متعال جل از صفات ما منزه و مبرا و پاک است قل هو الله احر الله سمت لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آه میگه درست است فهمیدم یز فهمی رحمت خداوند است که عقیده شفاف واضحه شفافیت در عقیده اسلامی وقتی که پیش مسیحی بشینید مرا بگید خب فادر درباره گاد چی میگی میگی اینجا یک خداست که پدر است فادر است دیگه ایشون خدای پسر است دیگه ایشون روح القدس است روح القدس چی میگی یک دونک کفترک وارث تو چون چون کلامت داخل عیسی علیه السلام داخل باز یک جمع یک جمع یک باز تو ریاضی خاندی باش میگی وان پلاس وان پلاس وان پس میگه اکول وان یک جمع یک جمع یک پس میگم مساوی یک یعنی چیکار کنم قرونه ریاضی است یک نفر بگه من یک تانان خوردم که یک تا نان نگاه خوردم یک تانان ران خود باز داخل یک تانان خوردم اصیحیتی مسیحی نمیگه بگم باز بعضی میگه که بسیار متمدن هستم بسیار پیشرفته هستم بسیار سیویلایزیشن دارم و چی دارم و چی دارم خیلی تو که سیویلایزیشن داری خیلی یک جمعیت جمعیت تو خدای پدر جمع خدای بزرگ جمع خدای روح القدس سه تا خدا رو بر مردم معرفی میکنن بعضی میگه که که باز یک خدا میشن که ناچ میری که پیسہ مینیگا رقص تا که پیدا باز یه بسیار به عقل نشونست، تو خبی از رقصیدی تا پانزه سال بیس سال پیش می رقصیدی پیش کمونستا. از غمت های دالر جان عزم سفر می کنم قبله خود بادازی تا دیروز خود طرف کرملل بود سوی واشنگتن میکنم. حال آل قبله طرف امریکا کردی و به خاطر پیسه نه در تری تره می زنی نه نا در ناموس تره نه نا دختر تره می زنی می دخترش تکرسر سفارت امریکا خب نعمت دیگه که خداوند متعال جل جلاله دادن ما داد وحی است نعمت ارسال پیغمبران نعمت چهارمی است پنجمین نعمت علم است خداوند برای انسان ها گفته اگر فعل الله الذين امنوا والذین اعطوا العلم درجات این پنجمین نعمت علم است ششمین نعمت اختیار است خداوند برای انسان اختیار داد ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملوها خداوند میگه ما ایده برای کوها او کوها شما کلان کلاں هستین نعمات وارد درگه خطی سر ما تسلیم است هیچ بر ما اختیار نتی گوسفند آمد سر ما بچرم ما اختیار نتی کوها آل سر کوها گوسفند میشد قرار کوی میچره خاص چوپ بک ان اعرضنا لما اعلى السماوات با آسمان و بعض زمین و بعض جبال و حملح الانسان لكن ای امانتا که حمل کرد؟ انسان اینه کان ظلوما جهولا این انسان بسیار ظالم و بسیار جاهل بوده که زیادتر در اختیار خود چیز که چی کرد؟ گفت داشته نیستم من باید اختیار داشته باشم در اختیار داشته باشم خب این اختیار داری خدا کنه که اختیار تو سبب نجات تو شبه خب نعمت اختیار اختیار در پذیرستن دین اختیار در گفتن و نوشتن اختیار در انجام اعمال اختیار در خودداری از اعمال بعد اختیار در خوددر نوشیدن اختیار در کسب حلال آرام. ارام در کل نزی انسان اختیار داده بعد ازی که انشاءالا مسئله و خیری و شریحی من الله تعالی حل شد بعضی سوال میکنم اگه برادر عزیز اعمال ما قبل از پیدا شدن ما در که اعمال ما شریعت اسلامی اعمال هر کس نوشته شده رسطوه و عملش که مثلا کل چیز میگه نوشته شده خب وقتی که اعمال ما قبلا نوشته شده خیمه چی ملامتی داریم ایخو کلش نوشته شده دیگه ایره امام صاحب اعظم امام نعمان ابن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که اعمال انسان نوشته شده ایره کتاب ابو المنتهی صفحه 36 و 37 ابو المنتهی یک کتاب از در عقیده. و مسئله چیزی که براتان گفتم سن... چیزا باتم که بازیگانی که اگر میخوایم خواهیم که معلومات چند زیادتر شود موضوع امی... چیزی که براتان دادم قضای خداوند یا پای پا. در کتاب شرح عقیده تحاویه این هم کسی رو نشتکل بنامه العلام صدر الدين علی ابن علی محمد ابن عبیل عز الحنفی امام ابن عبیل عز حنفی که تاریخ تولد و وفاتش 731 تا 792 هجری کمری ای ببارک زندگی میکرد. مثلا قضا را تقسیمات قضایی که مثلا گفتیم تکوینی و تشریح است او رست که تا به گرفته بودم و موضوعی که حال بستان ببینیم که امام صاحب اعظم پرسانش کردند در قسمت اعمال انسان این که اعمال ما نوشته شده امام صاحب اعظم نوشته کرده که اعمال انسان نوشته شده خب اینجا نوشته کردیم که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در عقیله اسلامی کتابی به نام فقه اکبر تعریف نموده فقه اکبر و باز کتاب ابو المنتحی به خیلی منعیف هم شرحی یا شطور است؟ شرح حضوث نیه؟ خب در این قسمت نشتن میکنم میگه که در کتاب ابو المنتحی نوشته شدن که نوشتن اعمال انسان بالوصف است نه بالحکم چه قسم؟ میگه ایتو نشتنه نشد که احمد مسلمان باشه احتمال باید مسلمان باشه و خالد کافر باشه اون نوشته نشد اگر تو نوشته که احمد باید مسلمان باشه و خالد باید کافر باشه پس صلاحیت انسان چی می‌شد از بین میره وقتی که صلاحیت نمیداش مسئولیت هم نمیداش امام صاحب اعظم میگه که نوشته شده چی قسم نوشته شده نوشته شده که استاد محترم روز جمعه ساعت 4 بجا به اختیار خود از خواب با اختیار خود وضو می کنه با اختیار خود به جماعت میره با اختیار خود تلاوت قرآن میکنه با اختیار خود به دست می دل وصف وصفش نشه و فلان نفر در منطقه با اختیار خود صاحب شو تا تابسو به گناهش مسو بود با اختیار خود صاحب در بین ایزار با اختیار خود سگ بیا کرده با اختیار خود سگ بازی میکنه با اختیار خود سنگ جنگی میکنه کسی سرش زور کده؟ اما به بیچارم سرش زور نکده اما سکم برش می که او انسانی من خو ندارم من خو میکنم؟ کنم مسئولیت ندارم تو چرا کسی غوغاو می کنی با این و با فکرت سک شود آنجا کسی کنجا نباشد سک سوار. نظامی گنجه میگن در آخرت میگه مثل سگوار واره میشه کسی که در دنیا این نفسش که مثل سگوار واره ایره با سک های یک جا میگن سر از این نفس خود سوار زباشه نفس خود در تصرف خود نداشته باشه امام صاحب اعظم بگه که اعمال انسان به چی نشه شده؟ به یعنی به توصیف شده و به حکم نشته شده خب اینجا بعضی کسا پرسان میکنم میگه خب چی قسم قبلا نشسته منو پیدا نشده بودم برادر عزیز وقتی شما در مقابل یک تلویزیون استاد میشین در تلویزیون پیشتی تلویزیون میشینی یک قاتل نشان که اون قتل کرد اون توفنکه را گرفت اون سر فلان نفر فایر کرد اون اون نفر را کشت بعد ازید گزارش نشته میکنی که فلانی قاتل مدید در فلانی ساعت در فلانی دقیقه به اختیار خود یا به اختیارتون قتل کرد؟ به اختیار خود تو فقط تلویزیون دیدی؟ خب به اختیار خود قتل کرد با این قاتل از فلاهی نفرست نشته کردی چرا تو حال نوشته کردی؟ چون علم انسان بعد از تجربه حاصل میشه علم انسان بعد از چی حاصل میشه؟ بعد تجربه تا وقتی که تجربه نکنی تو علم نداری افلاتون بیچارا و سقرات و عرصتا این از آسمان ها و آلم مثل گف میزده نمیزده آلم اصل است و آلم مثل زیر ناخنه های افلاتون 65 تا میکروب بود نمیفهمید؟ از آسمان لوی پاستور در قرم 20 تا و میکروب کشف کرد با میکروسکوپ کشف شد تجربه کرد دید که میکروب وجود دارد زیر ناخون هر کسی که چرک است، وقتی که ببینی بگید که یه هزار دانه ویروس است خب این حال افلاتون چرا نمی فهمید؟ سوپ بود؟ فیلسوف سوپ وقت خود بود فیلسوفی وقت خود بود حالا اگر افلاطون از قبر به خیزاری موبایل موبایلم چالان کردن میتونه در وقت ما فیلسوف نیست اما اون عالم کسایی هستن که من پشت افلاطون خود انداخته و اون فلسفه تو و سقراطی بیخیال رها شده و راه باز هم ده از او گرفته و خونه میره و شالاست و شالاست تو انسان عصر خود باش عصر خود دست خود زندگی بکن تو از افلاطون که دانشت بیشتر است اگر بفهمی ایناله اینجا در علم خداوند باید انسان فکر بکنه و علم خداوند با علم خود یک قسم فکر نکنه علم خداوند با علم انسان فرق میکنه علم خداوند قبل از تجربه است و علم انسان بعد از تجربه است تو اینه تلویزیون تلویزیونی را که تو امی تلویزیون پره تلویزیونه که آل دید بعد از گفتی فلاری قاتل است این می خداوند مطال عالم غیب است اینا می 파زه تلویزیون پیشوزی که انجام پیدا بکنه خداوند می فهمید به من به اساس چی نشه شده به اساس علم غیب خداوند متعال جل جلاله چه قسم نشه شده بل بل حکم نشه شده حکم نشه که این کار باید شود ما تو باید وقتی که ده علم خداوند گفت میذارم علم بعضی انسان هست اینا می کسایی که در اداره ایدرومترولوژی کار میکنن هواشناسی علم موثق و علم ازونا نمی رسن اون کسایی که در اداره ایدرومترولوژی کار میکنن وقتی که رو فرسان کنی ببرت میگه برادر صبا ساعت ده بجه امکانات بر بارندگی بر کابل امکانش هست که بباره. تو باشه میگی از غیب گفت میزنم مگر نیست این مسائل که مربوط به تجربه میشه من تجربی خود برات بیان میکنم اندازه علم خود و این مخالف شریعت هم نیست چه قسم میگم مثلا من میفهمم که در شمال افغانستان تاجیکستان است تاجیکستان فعل برف میواره اونمو عبر که در اونجه هست به سمت افغانستان در حرکت است. سرعت عبر هم میفهمم. مسافه بین افغانستان بین کابل و بین دوشنبه ای هم میفهمم. دوشنبه ایست پایی تختش خاریسی برفتاد از این شنبه اینال خیلیست خیلی از, از یه روز یک روز پیش میشه از خاریسی ای بروز خیلیست که شنبه از اون خواهد بسیاری وقتا در نمیره اینال س و... وقتی که میگم من قایسه گرفتم که از دوشنبه اعلی حرکت میکنه طرف کابل درست فاصله بین دوشنبه و با بین کابل چی قدر است سرعت اعلی قدر است اینو مگه سنجش کردیم توسط وسایل تلسکوپی تا تلسکوپ داریم وسایل داریم تو همین وسایل نداری تو همین وسایل نداری برن ما گفتیم که امکانات بارندگی هست چرا امکانات گفتیم میگه به خاطر از اینکه شمال که این طرف این ابری طرف میگه اگر کدام شمال از این طرف بزنش ابر میشیش سمتش تغییر کنه بره اون طرف بده از این خاطر ما امکانات میگیم بنا علم انسان با انسان دیگه فرق میکنه یا نمیکنه علم خداوند مطال با علم انسان به کسا که علم خداوند با علم خود قیاس میکنن وقتی که تو سر قاتل حکم میکنی که اینی قاتل قاتل است درست این قاتل قاتل است بود از اینکه تو تجربه کردی بنان تو انسان هستی بود تجربه حکومت میکنی و علم خداوند قبل از تجربه است بنان خداوند ضرورت به تجربه نداره چون خداوند میفهمید که اینی نفر به اختیار خود به اراده خود اینی کار میکنن اینا لو قاتل که قتل کرده آیا بود از اینکه تو نوشته کردی تو را کس ملامت بکنه بگه قاتل میخواست که اون لحظه قاتلنا کنیم خو برادر از تلویزیون دیدم خطا کردی بود از کردم دیگه و به اختیار خود این کار کرد و خداوند مطال جلو جلوه و اعمال انسان زراد به تجربه نداره عالم غیب است به اساس علم غیب خود ایره نوشته کلمه بعضی کسایی دیگه میگن یک سوال دیگه می کنن میگه برادر یک نفر عجلش پوره است که امروز ساعت دو بجه روز جمه بمره ساعت دو بجه امروز بموره میگه خوب وقتی که اینال این نفر میموره اگر یک نفر ایر ساعت دو بجه کشت پس قاتل چی مرامتی داره این خوب بیازه بیازه بود که میموره دیگر اینال جواب از این قسمه است که اگر شما خازی باشین و پیشتان سه نفر قاتل بیارن اینال گفت سر مقتول نیست گپ سر نیت توز که قتل نیت داشتی یا نداشتی؟ مثلا سه نفر را پیش پیشت قاری صاحب قاضی است میگه قاری شما قاضی هستین و این سه نفر قتل کرده و مثلا ورقم سه دوسیه را باز دوردم در دوسیه اول نوشته است که احمد قتل کرده دوسیه دوم نوشته کرده که محمود قتل کرده و دوسیه سوم گفته که خالد قتل کرده علی احمد قتل کرده وقتی که دوسیه رو باز میکنه احمد شو را قتل کرد میگه صاحب من ساعت دو بجه، ساعت یکونی بجه، محترم اگرفتم میخواستم که طرف اشاره بورم در پیش فروشگاه که دستیدم دیدم که برکه که محترم ایچ کار نکرد ارقدر ای طرف کردم، ای قدر طرف کردم نشد اینه در مروی قاریسه برابر شد خیالش که روز جوان شنبه است اما تو روان بوده بین سرک ارقدر بش کردم بش کردم یک چیز کردم، یک بازال مامنال دو شد کردم <تصفيق> <تص <تص> از این خاطر زدم صاحب قاری صاحب ساعت دو بجا رخصتش کردم از دنیا ولی ما اصلا به خدا نمیخواستم که بمرم موتر چیزش خراب بود بر خراب بود از این خاطر قاری صاحب رفت خدا ببخشید و ما سمی چیز نکردیم اناله خ... قاتل... ای که قاتل حق قتلش میکنه میگه به خاطر که قتل احمد نبود خطا شده از پیشش ولی سن یانه اناله نیت عزیز نفر که اجبارا کرده بود دخیل است میگه نیتش داخل نیست کاس اونجا کاسه دو می نفر کارردن گفتن چی کاسه گفت. دو سه ما ده تا رام شوق دست یگانه استراحت کنم لوت میذارم گرمی کده بود سر با هم بودم لوتک دادم که پایین افتادم در زیر در ما یک نفر قرار خو بود دست. سر دل از افتادم مردکاسب بردن شفخانه وفات کرد خب میگه چون حالت خواب است و وقتی انسان در باشه او محاسبه نمیشه قلم و مزی برداشتش شده دیگه از این خاطر قاضی میگه هم اعدام نکنین بیچاره شین اما نفر سی و میره وقتی که میارن نفر سی میره میگه خب تو چرا قتل کردی میگه من سر این قرضدارم بود برش گفتم هزار میتی یا نمیچی بده تو هزار من میگم من گفت که نمیته برش گفتم تا روز جمعه دو وجه وقت اگر دادی خوب اگه ندودی با سکو حالت داشت وقتی که دو وجه رفتم پیشش دفعه چی با من میجا بودم بدهی گف ندارم. ندارم بتیو بشه؟ ندارم ما بساید تفنگ میشه کشکرم دم, دم دم دم دم گفتم دگر تو قرض بگیری باز پس نمیتی <تصفح> اینال ای قتل کرد لیکن نیتش در بود یا نبود <تصفح> <بود بود. تصفح> بناانسر از ای چی میشه؟ قصاص باید شد که تو میتونسی به خاطر گرفتن قرضت از وسایل مختلف دگر استفاده کنی لیکن اینال در این سوال که میشه که فلانی نفر مقتول کشت همه شد گ که تو که قتل کردی تو مجازات به خاطر اینه نشه که تو چرا کار کردی به خاطر نیتش از این خاطر یه جواب از این سوال است یک کس پیش امام صفی پیش در مسئله قضا و قدر باید متوجه باشیم که به سری خداوند تجربه میکنن از خود خدا امتحان میگیرن یک کس آمد پیش حضرت امام ابو جعفر صادق رضی الله عنه دو <متحدث> ما امام ابو جعفر اصل قضا و قدر چطور است که ازو بسیار جنجال کرد گفت خای تو بگی خدا از این کول لول بدیم امام بگی که میموری یار میموری قبرات با ما باید ادب به با خداوند مراحت کنیم خداوند مرا امتحان میکنه منو خدا رو امتحان نمیکنه حالا مثلا یک نفر شاگرد است میره سر پیش رئیس پانزده بار میگه چرا امکانه کنکور ده پانزده بود گرفتی بدید تو چی همی ادب و هم مرااحت میکنه پیش رئیس نمیرا میگه همی سوالم هم میکنه یک ماموری که مثلا وظیفهش وارد و صادره است اون میره پیش وزیر میگه وزیر صاحب تو چرا ورده را دهی جور کلی میصادره ری میگه برو شما تو چی برو ورده و صادره ده بکن الان وقتی که انسان به امرای یک رئیس بزرگتر خود بی ادبی نمیکنه در وظایف ازو مداخله نمیکنه در واسه خداوندی خداوند متعال جل جلو ما ما چرا مداخله کنیم مالک کار خدا میگه خداون گفته حفظ کجا توالات القبیای دک ملا tehlekat بعد خود خدا در نا no, no, امر خداوند از تو باید نحیه کرده از از هلاکت که خدا هلاک بسازن با این درباره نفقه گفته شده ابویه بن صاری میگه ایات شریف درباره بسیاری کسات ما های شطوراست نمیفهمند گفت سر ما انصار ایات شریف نازل شد که ما در نفقه در راه فی سبیل الله سستی میکنیم خداوند گفت که نفقه بکنیم و خود چی را کنیم والله طول کوبی ایدی که الا خود خدا هلاک نسازین کسی که در راه خدا نفقه نمیکنه خدا بعدست خود هلاک میسازن ایناله این چه ادب با خداوند در مراعات میکنین خداوند برماشیز کرده خب انسان رحمت خداوند متحال جل جلالهود تقاضا میکرد که بعضی آلات دیگه است که انسان با وجود که اختیار دارن لیکن خداوند رو چی کردن؟ عفو کرده. یعنی از مسائل قضای تکوینی خلاص شدیم در مسائلی که اختیار داریم اینال میانده مسائل که اعضای غیر ارادی ما مسئولیت نداریم تنها در مسائل ارادی خود اون اونجه هم گفته که خداوند پرقیم برسا میگه نسیان یا فراموشی رفع القلم و رفع عن امتی الخطع و نسیان و مستقریه و علیه با رحمت خداوند انسان رفع عن امتی الخطع خطا خطا در فارسی اشتباه ترجمه میشه یعنی هم بخشیده شده نیست یعنی یک نفر اشتباهان یک کار میکنن مثلا یک نفر روزه داره اشتباهان از پیش آب کرد میشه سر این دو ما روزه نیست روز خدا فقط میگه روزه بگیره چون اشتباه کده کده و کرده که ما که تانبلی به تفاوتی کرده در حیرت سو دو ما سرش نیست الخط فراموشی یک نفر در وقتی که روزه داره میره ده خوب اما تو یک دونه ران مک کباب شده مونده نیست پیشین روزه میره صاحب عجل امره میگه خوره یک وقت باشه حالا روزه داشتی میگه مافاست ما چاره‌ای که خورد عن امتی الخط و هم از توکری ویلی اکرافشی رو میگن که یک نفر سرش اجباراً کار اجبارا تحمیل شود یک نفر اوبازی بیکنه یک نفیقش میست پایش گفت وزور کشش میکنه یک وقتی میبره که سیلی تر عوض پرد کرد این حالی ای بزور سرش این کار شد نمیخواست خودش روزدار بود که بابتیر بکنه ای افه یا مثلا یک نفر در حالت خواب است روپی القلم و انسلاسن قلم از سی کس ورداشت شده از خواب کس که حتی از سی خزه یک نفر خواب است در خواب دو جای سفر میکنه هر کاری که میکنه اینجا نشنا نمیشه خواب است قلم از این شده از کسی که خواب است تا وقتی که بیدا شود از تفل تا وقتی که جوان شده تا وقتی که جوان نشده ای در مرحل خوردی خود از این قلم برداشت شگید او خداوند حساب نمی کنن. و از دیگه بمی خاطر است که اسلام اجباری هم قبول نمیشه و کفر اجباری هم قبول نمیشه خب اینا آخرین سوال میاد که مثلا چی فایده داره ایمان و قضا و قدر اینجا اگر اگر یک نفر ایمان و قضا و قدر داشته باشه چی فایده میکنه که ما به ایمان داشته باشیم یه جای حدیثه است که حضرت عبد الله میگه میگه قال كنت خلف رسول الله صلی الله علیه و یا یومان یک روز میگه ده پشت پیغمبر صلی الله علیه و salam شش تا بود و قال یا غلام بر من گفت که ای پسرک این اعلمک کلمات احفظ الله يحفظك ما بر چند کلمه رو یاد میتونم خداوند در هیکس کو خداوند در حفظ خداوند باشی احفظ الله تجده تجاهك وقتی که خداوند رو یاد داشته باشی همیشه خدا رو با خود می‌بینی اذا سئلت وقتی که سوال کردی فصل الله بگو یا الله یا الله یا الله از کس دیگه کمک نخواهی اذا سئلت فصل الله و اذا استعنت وقتی که کمک می‌خوایم مدد مدد مدد, مدد بگو یا الله مدد یا الله کمک وصیت پیغمبر اسلام است و ان لو اجتمعت على ان ينفعوك شاین لم ينفوك الا بشاین قد كتبه الله لك اگر کل مردم بخایل که تو را کدام چیز براتون نفع برسان نفرسانند نمیتونن مگر چیزی که خداوند متعال براتون کرده ده و لو شتموا علی اد روک به شاین اگر بخایل که بر تو کدام بدی بکنن بدی کرده نمیتونن الا بشاین قد كتبه الله و علیک مگر چیزی که خداوند برای تو مشخص کرده رفعت الاقوام موجه فت الصحف قلم ها برداشت شده و کتاب ها خود شده از این خاطر انسانی که مثلا به قضا و قدر ایمان می داشته باشه اول اطمینان قلبی می داشته باشد از رفته قلم هیچ دیگر گون نشود و از خوردن غم بجز جگر خون نشود گردر همه عمر خیش خونا و خوری یک ذره از آن هست افزون نشود از این خاطر انسان مسلمان نگه که چیزی که اطمینان می داشته باشد من اون برای کسی قصه کردم یک خوفتن خداوند بر ما شوله نشک کرده بود من همی خواستم شوله بخوره. شوله ده خانه رفتم چی پخته اگه گفت شوله گفت خراب نمی‌خوام خیسم رفتم خاری همسایه و همسایه همیشه مرمه و استاد یک روز بیا گفتم بیا میرم روز خاری از یل به شوله پیغام شدم. رفتم خاری ازم گفت داداش داشتم داخل شدم بوی شوله بود بعد از اون سه بار اسم کوفه روزی دار آسمان شکه جیباک از دلار پران باشه نه یگانه جیباش از دلار پره از گوشت چی درسه فريد